بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازم قبان نهایت بارش وقت که زمین با همان زلزله شدید خود رو برو شود و زمین گرانباری های خود را بیرون افکنند ای که انسان بگوید زمین را چی شده است در آن روز زمین خبرهای خود را بیان می کند به سبب آن که پروردگار تو به آن امر کرده است در آن روز دست دست از مردم به گونه متمایز و جدا شده به راه افتند پس هر که به وزن زره خوبی کرده باشد آن را می بیند و هر که به وزن زره بدی کرده باشد نیز آن را می بیند